این هم که اینجورتون شد یه به نظر یه این هر حال گازو باعث شده نه باب استفاق خوبی نیست. یکی که من حالا من نداشتم به من تی ان جی این بلاقرض بود. اما وقتی سرویس‌های دیگه خیلی دیدم بعضی وقته منم دیدم مثلا سرویسه این کارا. بابا بعضی ما این منو دی بالا نمیاد. بعضی هر سه بعضی وقته می‌بینم منو توی مرحله بوت میشه میاد بالا میشه. یلا دوباره اینا علی میگم بلو دوباره این هر همه دوباره این نمی دونم ولی پیشنهاد من اینه که یه بار برو نگاهی این کنیم مشوت هم میشه اصلا نمی‌دونم رو رو در رو به این آجا شویی چون چند کار من چند دارم اصلا توان رفته که کارم کرده نم برکشانتی هم هستی دیگه این اتفاق نیست سیستم داره کار میکنه یا که از این تیپی درست حالا من یه دیگه از یه ایم اینه که یه بار کن بروز کان فران کن رو ببرم بعد درون میشه یه پی دی اف ادامونیه که معلومه من لاگ فايلش دیدم برای تو یوزر ماله ایش. معلومه رو انجام بدم ولی این کارام حالا در حال الان شده. یه چک کن که در واقع همون پی اس کی هستش. یه اف اس بکن سیستمت رو. یه صفه چیکار اسلاشر کن نورو بذام ببین. چه اتفاقی میفته؟ نه، یتن، تو بته یا येणार. ولی نهایتا اگه بهونه یک کیف تجربی میخوای که ایشو بگیری ببینی چه جوری میشه مشکلش رو برطرف کرد از اون اونجوری که واسه بشینی آره دیگه واسه نشینن ایونت رو نهو کنی با تیم چی بود همین چند وقت پیشا؟ جالبه بهتون بگم, بگم که همین چند وقت پیشا من یه مشکل لکن در رابطه همین چیزی که آقای صاحبatani الان داره میگه یه جا یه دومین کنترلره ویدو 2008 آرتو بود شاخی جدا من صد تجربه بدیدم. تجربه جدی هم بود و خود منم اصلا. بعد ادیشنال دومین کنترلر نصب می‌کردم براش، ادیشنال دومین کنترلرش نصب مشکلی نداشت، اوکی؟ بعد خاطر اپلیکیت می‌کرد، یوزرها همه میومدن، ولغاش این که کرد، همه چی رو به راه، DFS دی میزدی همه چیز بود، تو تا یه تازه دیپ مورولا ها رو انتقال داده بودم و ادیشناله که در واقع اصلا قبل اون دومین کنترلر آبین بره. بخاطر همین داشین اتفاق می افتم. آه نمیشه اول این چیزی به ذهن آدم میرسه؟ چیه تو که به تمام ما تو مشت توی او همه که نمیتونن. نه دستی رفتم اصلا،, اصلا ببین. یک روز کامل هر فک تو یعنی واقعا یه دونه خام نصب کردم خودم شخصا اینو به دستی بهش دادم مستقیم منم آدی فقط دوومی دادم بعد لاگین نمی‌کردش مشکلی نبود اما بیسی یک کوکاشکی میوردون کارا واججاله به توجه دیدم یک کوکاشکی میوردی بیرون سی پی من هم. که همون ادیشناله بود و تازه نصبش کرده بودم خودش هم دیگه خودش لاگین نمیکرد، فقط که تو میومد لاگین خب اولین چیزی که تو بینست میان چیه اولین چیزی که فکر با این سناریو که اولین که احتمال باید چکش کرد چیه نه به وقتی دیسی یکی میگن تو شرکل لیکن بود تمام تقاضی دی هم از و رفتم نگاه کردم سریال نمبر رو یکی یکی نه رومیگ حالا کی چون گروه شد؟ به کلا در چی نباشه؟ هیچی لگین نمی کنه گروه شاید نباشه؟ هیچ چرا؟ چرا کنم نمیده؟ قرار نیست خیلی اینجوری باشه. نباشه. مهم کنترل از کمک نمی این چون عضویت یوزر در های یونیورسال مشخص نمیشه وقتی یوزر در های یونیورسال مشخص نشه، دیگه برای اینکه اوبجکت یودا در روه یونیورسال مشخص بشه، کوئری اکی گرفتنشه. دیتابیس کاتالوگ رو پیدا نکنه. اگه اجازه بده تون دارید کنی، شاید تو ببینید اوبجکت رو خدا دارید کنی، بگید من اوبجکت به گروه یونیورسالام، یونیورسال واقعی. و ما دا هم نمی‌تونه کوئری کنه. بعد اون اوبجکت رو به اجازه بدید تو داشته باشید. ممکن است کیان چیزی خب من هم اولین چیزی که درجه به زندن ها ستا خب بسیم ناکه میدن چشمانکی روکترولوی هم خورده ده خب چرا کنیم چشمانکی از دو هم اون روز به نتیجه نرسیدم. آه ببینی که میخوام بگم مثلا یه همین مشکلاتی رو که من باید بدم چیکار کنه این واسه بشینید با کلنجار بدید می‌بینید که بعدم اینجا کلاس داشتم با بچه‌ها بالا صحبت کردم با بچه یه کی ما مدرسه ام سی آی تی من یه ایده ای داره هر چی چیزی گفت یکی گفت گفت اینا برو کنه درست بکنه مطمئن بالا بالام بحث میکردیم با هم دیگه مثلا نظرات مختلف رو آره به دروغ رد می‌شدش یه سری بیشتر روش بحث شد خلاصه بچه‌ها واصه منم هست ببین فرام شد فقط بگو چی شد چه خبر شد چون ما خودمون هم جالب بود ببینیم شده گردش بر خود منم خیلی جالب بود اینکه کار عجیب بود دیگه مثلا عجیبا دور کنترلر نصب می‌شد صفر برای که یک دو بود یه سری جاها که می‌رفتم می‌گفتم یخارا کرد. حتی یوزر روش می‌تاختی قشنگ بعد دیگه می‌گم این و این اما چی اوکی اوکی ولاتا. آخر آخر آخر آخر به این هستم گفتم که ببینم. تنا به خودم گفتم تنها دلیلی که یه نفر نتون لایک کنه بازم همون گورو باکتولوژی. از اینا که زدم بهت با میگم بالا میگه کلی هزار تا تست کردین نه این ذ تیکرهای به ذهنیت میاد یواش یواش میاد. گفتم ببینم به کوته گلوبال کتالوگ لسن میکنه کامپیوتر من میانم پورت گلوبال کتالوگ چند 67 67 <مممتر> اشتباه گشت بانه کنم خودمان 67 67 17 چیزی ببینم که لسن میکنه کامپیوترم اون یا نه؟ <خیلیه>. درسته مثلاً داشته که رو بذاردم نیست، اون تو نیست. که یک دیسی نیا که امید رو هست. رو دیسی یک رو دیسی دو ۸۶۰ لسن علاوه بر یک چشم که گلوبال کاتالوج خورده بود، پس وقتی خورده بود اتوماتیک. گفتم اوکی که یه یک چشم رو بردارم، اپلای کنم. یه دیگر یک رو اپلای کنم، خیلی منفیش بشه. این کاری نشد بعدش هم به خودم گفتم که من این دو داره تازه نه سرم اگر از این جیرمیدان نبوده باشه اصولا بعد فهمیدم میدونم به آنها خود مشکل چیه اینجا دیگه مشخص هست حد اقل مشکل چیه همین که میتونید حد مشکل چیه بعد دیگه از اونجا به بعد میتونید همه سر رو اون نقطه اونجا را حر کنید بعد بعد تو اینترنت درش کردن که یه رو باید شخص رو کجایی رژیستری میره می‌کنه. رویدادها دیگه گفتم اصلا متوجه نمی‌شوم. من و کارم فلان، فلان فلان فلان کلید. فلان چیزو من ندارم. رفتم اون و روی کی دی اس کی فلان هست. درستش کردم. کلید در دستی. کاپتور ریسپ که اونم بالاتر، نسبت اشاشه این دیدم چاست. این بیرون، دیدم دید همه الان لاگین می‌کنن، مشکلی ندارم. خاموش مشکل هست. ولی دورو تو پیشی، زبان مشکی زبان دیگهام پیداشه، دلیلش چیه؟ خب؟ اینه که خیلی وقت‌ها خیلی مشکلاتی دیگه در این لول که پیش میاد، آن نمی‌دونی تو. یعنی واقعا باید داری بررسیش کنی. تحلیلش کنی، نتیجیکی کنی ازش و بعد خب یه اقدامی بکنی که واقعا مشکل حل مورد شما می‌تونه از این جنس بود حساب بشه. هزار بار از این من هم پیش اومده ولی هر بار منید اونو شاورتون تمیز دست بدی بعد هم مشکلی که همین باید کارهای تو پیش بدینگای خیلی حرفه‌ای رو که انجام بدیم، مثیره. کاری که انجام دادی که شاورتون انجام شده رو بخود داکومنت کنی. بعد اون مشکلی پیش اومد، اون لحظه تو ذهن اون میدونی که یهو داکومنتشو داری. دیگه لازمه مشکل چی بود قالوري افضل ده اس بعد یعنی رزولوشن کاری این اپ داره و بعد اینا تو جاب کردیم. یعنی مثلا در مورد یه تا دو دین یه کاری که اینکه ویندوز اول نصب دومین دومین که سلام دو هم صداش که آره تو به چی پاس پاس پاس بالا بالا این تو کاپ کنی ها بعد میگن بازنشون ها خود میخود میزنن یعنی اصلا یه چیزایی میگن که دیگه بود هم بهش بگی خودت خود داری اشتباه میگذانن بازنشون باش من یادم خودم هر میرفتم متصدی بکنم یا خودم مصاحبه شرنده بودم کسی بودم که با متصدی میشد و با توام جم هم نمیدونم پارت میریم و هم باشیم یکی آدمش میکنی. کدوم؟ دادو دادو. زنکی نیم کلمه که من برای HP دوست دارم که توی ویدیو دیگه اگه نیمی نیمی برم خیلی از توی و جایی نداره و با نه ببینا من دو سرور دو تا دو تا 2080 نه راه دیگه گفته. خاطر بخونین اونا. سال کی ام جی یه شبکه ای بخوام پی ان جی را بعد این درستو. خب. بعدتون بگم که رو حالت ویچوال باشه بعد کی ام جی از وارق پولن ریس کامیاست. نه، روی هاست روی هاست اما که ای دولر مثلا یعنی ترافیک حملن ترافیک نتورکشون هم کاملا مثلا هم جداست. تحت تفکیک کامل هستند این دولر هاست. یعنی شوادی اصلا نمی نه، ولی معمولا اگر یه ذیگه احوال مشخصه اینی که تو یه هاست دو به یعنی جداش می‌کنی یعنی دی ام ها ولی نه مشکل نداره ها مشکلی وجود نداره دیگه من بوده بعد کرده kontinena ملوسینه کرده اصلاخه اینا دوکا بگیری من بودم چیز بود چا خوب بود برای اون صندوق DNS رو مششیم آدی کانفیگ کنیم. اولش DNS رو ترافیک بذاریم که رد باشه. بعد کنیم. آلی چون بریم دوباره DNS رو چکش برسون. ما تقریبا سوالا رو دیگه نمیگی. احتمالاً بوده که DDNS فعال بوده روی DNS و کامپیوتره خودمون رفت DNS register کردن حالا که سخت ارتقا دادیم رویکرد DNS کالیاتا رو دین فیل شده این بوده احتمالاً باشه اگه این وضعی که دوستم همین تو گفتید اینا تا اون فرق داره شده چه فیل شده باشه یا فیل شده بعد اگه ريجستریشن فیل شده باشه خاطر اکانت رو ببر از کن این گزه بود آ یعنی دبلی کیتی پیریدی که دی ال دی، però باید رو توی مشکلی وقتی که رکوردی که توی DNS ذخیره شده اونرش یکی باشه، یه فرد خاصی باشه، تو الان می‌خوای بیای همون رو آپدیت بکنی، اما اونر واقعی یه فرد دیگه ای هستی. درنتیجه رکورد تغییر نمیکنه چون DNS داره. انسجامی آره وقتی تا چون مسئله شیمی شکوفی پردازش گروهی خوربا یه تری سه تلو تو برایش شرایطی که خوربا می‌دهند، چون مکان هر دل خوربا یه تری تو چون مکان هر دل یه که چون ممکنه هر یه که یه تری تو که اما تفاوت که فقط اون فرمه نیستش که. می‌گی چی میگم؟ ما مثلا ما جیمیل یا اینا متن ماشیم. اینا تفاوت داینامیک ندارن. اون صفحه دایم، من میذارم www.yahoo.com. yahoo.com خالی یه صفحه داینامیک هست که. خیلی خفن. خودش میگه. اینکه که فقط مرتبی توش. بعد از داینامیکه؟ داینامیک باشه، این اون اگه بالا خوشا شده چون با اس شده. حتماً چون با اس شده. اگر 99 درصد صفاتی که با صفات بر زبان بند نییشه میگن، میشن که داینامیک باشن. در واقع اینا ولی خب این دلیل کافی نیست، یه که یا نه. آ، یه بار رو بعد کوی پُست می‌کنی اون بعد صفحه دیگه. لوگش حالا مش داره با خب. حالا خط صفحه داینامیکه، اوکی؟ حالا اون صفحه داینامیکه، خود اون صفحه داینامیکه، یا از بوده بعد کَش می‌کنی. ری‌دات کَش می‌کنی که برای ری‌باک، ری‌دات اینترنتی که کامل کَش میکنه تازه اونم می‌کنه. اونم سِرش می‌کنه، چیز می‌کنه، کَش می‌کنه. که اگه نیازی دوباره همون فایل‌ها دیگه نشون نمیده. اما گفتم یک سری صففاات ببینی که معملت اکثر تفاات ز درست حسابی که همین یاغو بگلو مثل مایک Microsoftپ کو شرکت های بلور ماقولشمونصفح چه ریش ف میرم نداره. اما هر وقت مثلا پرکن بیننگ بیننگ وقتی که اجران می میری سایت بین.com بعد ب اینکه اکر پای کاپ توی تو ایرانه کنه نه نمی موسیال رو بدون. دیری بیننگ وقتی میری اصلا یک معمولا کس های شد با کیپیتشون میدهن می. بعد سوال وقت سوال است دیگه چه چیزی میت اتفاق میفته؟ ببینو وقتی پینگ رو اجرا می‌کنی میاد که اسکریپت قبلا دیگه اصلا فاکتور ماک اوشی و اطلاعات رو بیاره میاد این کامپیوتر یه اسکریپت اجرا می‌کنه رزولوشن کامپیوتر مانیتور تو اون لحظه پیدا میکنه. باعث به رزولوشن مانیتور تو یه عکسی که داره روی سایزش میکنه با اون رزولوشن با اون رزولوشن نشون میده. بنابراین مثلا هر وقت پینگ رو می‌زنی می‌بینی که عکس خیلی با کیفیت به نظرت میاد و قشنگ تو کامپیوترته. درباری وقت نتیش کنم. آموزش خب. خب. اون صفحه خودش تغییر میکنه. اون تاثیر که خودش ترمیمی میکنه. این کاری انجام میده. خودش میشه. یه نه میخوام بگم. میخوام بگم که یک سری از ب خودشون های توش نوشتن که یا کش نشن یا هر بار یه سری چیزا رو بخواید چک بکنن، یا مودیلات قبل، یا مو رو تونستیم کش کنیم یا نه؟ کشه. اما وقتی می اومد به هم می اومد. یه مقدار درسته؟ دلیلش به همون اسکریپتینگا با همون کداییه که اونجا نوشتن. نهایتاً صفحات داینامیک اون صفحات پروگرام شدن که دارن یه تعاملی با کامپیوترتون میکنن اونارو میخوای کش کنی یا نه؟ قضیه داینامیکو رو بکنیم یا نکنیم اینه. مثلاً چی شرطان بیشو بیشو نه نه خب اول ببینیم تو مرد براست به سرگو نتجه برسیم کجا بنام برسا رو ببینیم ویدی یست؟ نه. یه رو، یه خب. پس اینا سوال CNGO یک عبارتی که حالا درس دادم. خب اول دادم که تو بحث اثر تیکر ناتازین با که چه با مونیتی چیزی که تو یا ریکوست رو از دای از سکیورنسدری برمی‌شی یا ریکوست بدی رو به روترت که تو رو به مقصد وصل بکنه روترت یا روت تست می‌کنه واقعاً که اگر روت تست بکنه فرآیند روت کو رو میده چه جوریه یا نات تست می‌کنه که دوره فرآیند نات مشخصه چه کار می‌کنه باثری تو رو در پورت می‌گیره هدر باثد رو برمی‌داره هدر اصلا تو آی پی پابلیک خودش می‌ذاره و می‌فرستش می‌ونه که لایت ای اما وقتی که شما به صورت به پستی واسط بحث می‌شی اصلا قرار نیست لایه ارتباط ارتباطی برقرار بشه که اون بخواد تو نکینگش نتس بخونه یا روتینگ پروتیپل رو جو ببینه که تو قراره به چه آی پی دست بینه که ببینید به اونجا اصلا روت داره یا نداره که داره بخواد روت بخونه درخواست شما رو اینا اون لایه هشت که لایه اپلیکیشن باشه میگیرم الان هم چیزی نیست من اصلا واسه گفتم که تی دبلیو ای کار می‌کنه گفت حالا یه هشت کار بعد گفتم که تا در چند گفتم لایه هشت گفتم لایه هشت تو لایه هشت چیزا بعد آمده گرد و بروزه گفت گفت لایه همی جمعه بوده تو لایه هم تو لایه هم ریگوه به پاکسی که در همون تیمتی باشه اون درخواست خاصه میگیره و دیگه اصلا به یه دفعه کارشایکی یه دمن خودش شما می‌برید کجا واسه می‌کنه به اون در حقیقت داره نتا انجام میده اما نک بهش بخاطر نگاه کنه یا درخواسته میدون روتینی داره به مقصد یا من اینجوری دیگه چک نمیشه همین از کی گفت میاد اضافه آ میرون هم نمی داره در واقع همین اتفاق میفته ریکوست میاد روی تو من در هنوز پابلشینگ رو ندادم به در اصل پابلشینگ میره اما ریکوست شما میاد روی پورت خاصی روی تی قبلا موقعاً تعریف کردی آقا اگه به این پورت خاص رسید، درخواست رو بگیر، عیناً ببندش به این هاست داتا از بین که میاد لاگ دیی میاد. پروسی نیست. پروکسی برای تو از پشت به اینترنت بند اما من اگر از به سرور دارن داخلش اینترنت داره میاد، وبسایتی که من اون درسته؟ برد اون دیگه آی‌پی رو که داده داشته، لاگ اومده کاربرها توی ساختیشه کاربره کاربر توی سازمانه، گوزیشون که کی‌ان‌جی، کی‌ان‌جیش لایسنسه، میشه، میره، کاربر میخودش مستقیما اینترنت میشه. از این سمت توی اینترنت صحبت توی اینترنت ریکوئست‌ها این صورت میاد که لایسنسه ی هرش، فراهم میشه، با توی اکثرنال باز شده پایبا یا باید باشت تو پایبا از اکثرنال و میشه خب کار که چی یه میشه میشه که یه تو با آره باز ها توی ای اس پی و فایرو والا سر راست اصلا نمیشه اول که پروژه این پکر بیچاست من اون هموقم نمیاد جواب بده من چه تو اینتر توی اینترنت ریسرت تو جایی وجود داشته میشه دیگه بری در دسکتاپ رو یه مشکلی که من داشتم داشتم ها دیگه با یه من داشتن آیت که رو وقت کرده بودم ما تو سازمانمون گرد بیپین یا سایتی داشتین گرد در که ما می بهش و بعد آیت استفاده می کردیم بعد ما دامه من آیایی کسی دیگه آیایی کسی چیزی بود که باید باید باید باید با اینترنت رو دارم بعد نیوه تا کی که یه که اون که بشه نمی یعنی بعد من که چرا اینجوریه؟ که بود که کرد دارم خب یه از اندازه میذاره ولی در دومیشو اندازه ننده چون جبل نرز میشونه همین اندازه اندازه رشد باید اینو بیارید این رو به خود تی ام جی بذارید. خود تی جی یک بار نصب کنه بعد اون مودمتون میگه اجازه نصب نشه حالا من الان الان فهمم که من تی ام جی دارم از پشتش چند نفرم بی پی تو اینترنت و کار یک اپیی نوکته آها به یه نقطه نوکته طبیعیه خب ببین نوکته اون ما میکنه خود م. شرکت اعلام شما راحت چند خواهید داشت باز منطقیه میزچرا شما اگه وقتی که تو وی پی ان که خودت اینترنت دیگه داری از طریق تی ام چون وی پی همه یا توج به اون نسه به اون داشتی وی پی ان اون یه تو ما یه بار موقع من دیگه همه مطبقی داره چی؟ معنی داره؟ نمی دیگه ولی خب وقتی که تیم هیچ هر چند سار خواستم من تی رو بهمی داری دیگه همه مطبقی داره بوده باید یه رو؟ سورت فرم کنه وقتی داری سورت همه سورت آیپیت میشه آیپی اکترنال تیم جی داده است درست کنیم؟ قبل دیدی که اصلا کش فعال هست یا نه؟ فعال هست، اما کَش, میشه. این کش نداره. کَش رو که می‌ذنی اکتیو میشه. می‌تونه اول هالو اسودیک کنه. ما توی کَش درایو نداره، دیتا رو برمی‌کشه بکنه. دوباره همین این دیگه اون باز نمیشه نه header باز نمیشه یعنی در واقع نه برای نه نه لایه سخت دیگه خب جلسه قبل در زمینه کاشینگ صحبت کردیم وقتی کاشینگ رو راه کردیم تنظیمات هر وی کاش رو دیدیم با هم دیدیم که باید کش روز تاریخ رو بکنیم وقتی یه کش خفنم را اندروید کردیم که همه جور با شش بکنیم بعد دیدی وقتی می‌خوای یه کامپیوتری رو دیدیم وقتی وقتی می‌خوای یه سایت رو کش بکنیم، برای اینکه اون سایت کش بشه، تی ام جی میره. تی ام جی میره، last modification سایت رو نگاه می‌کنه، از آخرین باری که سایت تغییر کرده. اون لحظه که شما دارید سایت رو نگاه می‌کنی چند روز بوده؟ یه فرمولی که درصد و شدن و نمردن و اینجور چیزا داشت، مشخص می‌تونه بکنه, بکنه که حالا چقدر اون سایت رو شب کنه، چند پیش بردش بود درصدش پرسانتژیش تو چقدر؟ درصد. مثلا میره حالا ما کلش 50% رون بشه، ها؟ مثلا میره یه سایت رو آخرین نگاه آخر یه کرده. الان که من دارم به نسبت الان که من دارم نگام می‌کنم میشه ماه پیش 50 درصد یک ماه پیش رو محاسبه میکنه، 50 درصد یک ماه بیش پیش چقدره 15 15 روزو چک میکنه. ببینه بین 0 و 0 مردن حد میونه اگه بین بازه 0 و 0 بود همون قد همون قد میکنه. اگه کمتر از 0 الستر بود در نوده 0 الستر اگه بیشتر از 0 بود برنامه وزیده که این فوربول برای سایتهایی که مشخص نکردن که چقدر ما رو کش کن چون گفته بودم که سایت ها خودشون براره دویسا میتونم مشخص بکنن که این سایتشون کش بشه یا نه یا اینکه چقدر کش بشه بله هم آیایتر بیتونین کار رو انجام بده هم پروگرمه داختی در سایت رو یه کنه رو یک چیز تقایی رو در سخته یک تریایی دارش چقدر حضر رو کش پ چه واسه اگه سایت خبری و باشه بورس و طلا ارز داده باشه اونا یه روزی اصلا کشم مثلا تگ بزنن تو مثلا کَش نشه ولی مثلا هم باید, باید, باید عوض بشه رو بزنید بشه رو. خوبی دیگه اونا رو بشن باز هو افتی پیاد که مثلا بیشتر وجود یک دو باشه بعد که داشتیم این که آقا وقتی یه نفر رو می‌کنه که آقا منو به دابل دابل دابل لوک اونم با اون یه کن یک برو اگه کش همچین اوبجکتی رو داشت حالت حالت تا پیش می اومد چندین حالت پیش میومد. اومد آقا اگر اوبجکت توی کش بود و valid بود valid بود یعنی بر اساس قانون‌هایی که تو تعریف کردی یا قانون‌هایی که خودمون ساخته طراحی کرده بودی گذشته expire شده باشه اون اوبجکت امنه که از اون اوبجکت باز نشون بده اگه valid بود فقط اوبجکت رو از کش مثلا برمی‌داره اگه valid نبود روش بگی تو اینترنت برد روی این پیرامیت باید به لحظه نظر میاد بهترین حالت هم میتونه همین باشه دو هومین چی بود؟ کش رو چپ کن اگه تو کش داشتیم این آفزیب تا اگه خود ایندر بده دیگه اکسپایر هستانیت تو بهش چود فقط اگه تو کش نداشتیم روتش کن روی این پیرامیت سه حالا حالت چی بود؟ کش رو کن تو کش داشتیم بگیزر بده. بده تو کش داش چرا در دردی گفتم که سایت‌های شاید وجود داشته باشن که اصلا شاید یه بار هم اون سایت‌ها آپدیت نشم دردی تو سایده رو یه بار رفی کش کردیم می‌خوای که هر وقت هر کسی اون سایده رو ببینه اصلا یه سی‌ام‌دی تو هیچ وقت نره همیشه درجا کجوش بده از اون بشه یا خب بعد بهتر هم که اگر تو قسمت هم یه میگن یوزر ما نیه آی اف کنید که بازم filt demonstن نه. تاخه درو در اونجا شورتات وی ام توش شورتاتش یه رو وا می ها اوه لطفاً کش بعد جو کش داشتیم کاش رول رو تعریف کردیم، کش رول رو. حالا ما هم بحثش کردیم گودناج رو. که خیلی مهمه و یه تره ادوانس هم داشتیم. این گودناج اینجاست صحبت یعنی گودناج پایین هم هر دوز دادن بهتون که اگه یه کشی اکسپایر شده، چه قد از اکسپایرشنش گذشته دوباره تصمیم بگیره که کش اکسپیر شده رو باز نشون بده یا دیگه بیخیالش بشه. رم کچینگ هم که دیدی هر چی رن بیشتری داشته باشه، چون رم بیشتر بده باز پرفورمنس بهتره. حالا میمونه تام کانتنت دانلود. همه کانتنت دانلود غالبا هست. میگم آقا من به تجربه دیدم یوزرها توی سایت همشهری میرن. مثلا. یه واسطی هست که خیلی کار می‌کنه. میگم خیلی می خوب. برای اینکه یوزر اگه درخواست داد منو به سایت همشهری بفرستون، من از قبل این دیتاهای سایت همشهری داشته باشم، کش شده. ها یوزر خواسته کش بهش بدم، یعنی در کش بدم. قع می از قابلیت کانتنت دانلود استفاده کنید. با از این قابلیت میتون به تیمپیسه ایقا توی این ساعت های خاص برو به اینترنت و عش و این سایت رو دانلود کن هم موقت سایت از سحات اون کن دانلود و اگر کسی بیا بزنید دود هم شهری آنلاین داد های آ مثلا این از قبل دانلود رو انجام بده نه؟ آ دا نمیده ولی اگه اون اینترنت هم؟ نه یه زم از چی از رو چی میده اروشارتش نه خب سوال خیلی میره بالا دیگه صبح اوله وقتی طرف تام میذاره همشایی دو تا یا اینترف صفحه جلو چشه تمام که اینترف صفحه جلو چشه دو بار نشون دادم ها اینم حالا یه مدل دیگه که از قبل قبل از اینکه یوزر یهخواستی بکنه تو خودت بری بگی آقا یه سایت برات برای چی بشه دانلود بشه م؟ با نرم مثل ور دیپو کار کردین خب و من دیگه وام گرفتم، باکترو دانلود می‌کردم، و منم میآوردم. منم مثلا یه همچین حرکت می‌کنم. یه سایتو دانلود می‌گم که تو خاصی صفحات اون سایت رو بهش چک کنم، درسته؟ خب. برای این کار دورو برای اون‌های مختلفی که بنویسید، طبیعتاً دیگه شهمند، کانتننت دانلودهای مختلفی تعریف کرده باشم. یکی رو بگم هر یه هفته یه بار برو سایتارو دانلود کن، یکی رو بگم هر یه ساعت یه بار برو سایتارو دانلود کن، یکی رو بگم فقط یه بار برو دانلودش کن و نوارستم تنظیم ما به چیمچه هم انجام خب نیو رو میدنم می یه F بده بشتی چی؟ ولی بهتر توی بدی اون سایتی که مثلا دارید آن بهتر خب نه؟ حالا سوال میپرسه این جوابه شما کی اجرا بشه؟ یا چجوری باشه بردیش نوارستم؟ گفته one time only یعنی یه بار اونه Uncomplete of this وقتی این ویزا برات همون کردی من بر اون رو جا کنم کنم نک میکنم اینجا خب بعد یه یعنی اینکه که دیگراریم یه بار فقط زمانبندی هم که یعنی زمانبندی می شدید شده خب چه بندی؟ اصلاح بعدی مثلا از می خب حالا می بگیم اگر دارم حالا اگه قرار یه بار باشه من می دنم یه بار نه چه ساعت رو داشته پنجو پونزده دقه پج کجا نوشته پنج پنجو یک دقیقه برک نوشته پنجه و یک پنج نوشته الان ساعت چنده؟ پنجو و پنج یک دقیقه تقرا میشه چند دیقه دش پونزده دقیقه اگه علی رو وان خودش پیش برد دقیقه بعد زنگ می‌کنه رو چه بکنیم؟ ببره اگه تو می‌خوای دو ساعت به بعدش این کار رو بکنی اینجا پیش‌توا کن ساعت رو خب من رو می‌ذارم میگم بیبی ویزار رو علی میگه که چه جوری باشه بعد؟ تو چه ساعت استارت تایم چه باشه؟ جاب استارت که روزی پیت هر هر چند. روز میگم آقا هر روز بکن توی این ساعت توی ای این خاص خواهد. بشه؟ هر دو روز. توی این باید. ساعت خواهد هر. مثلا سی دقیقه یه بار. میبینی چه؟ میبینی ارائه یه آموزشی باریه؟ که میگیم خودم یه آموزشی که بیزاره یه بار برو این کار را انجام بده. نه. میگه خیلی خوب. کدوم یوآر ال رو میخوای دانلود کنم. URL رو برام بریمید چی رو وارد کنیم اینجا؟ test.com رو ب test.com رو گه میتونیم نیسته دانلود کنه میدونیم http www.test.com اگه داریم میخواییم و virtual directory رو دانلود کنیم میتونیم اون خدمتی که میخواد ولی من نردیم همون test.com رو برام دانلود پس job limit اولا از به بالا maximum number, concrete, job. دیدی وقتی میری با IDM دانلود می‌کنی و روی چند تا وقتی دانلود هست یه قهرمان جادوونه برای خوش به اختصاص می‌گیره یعنی سرعت دانلودت میره باید باید. حالا میگه آقا خواستم برم اون سایت ها رو دانلود بکنم چند تا session بزنم برم سایت رو بیارم بیارم چند تا تا. غالباً تا نه رفتا دور ببینم این هرده داره چندگی جو گذاشت یا با تو خورد درش کنم میدونم سوالتون شدیه الان میخوای ببرده تو جمع بسیده هیچی گرد چهار برده Limit number of all objects retrieved to maximum میگم آقا قرار بر اون سایت رو download بکنه خوشبه سایت داره یه های خیلی خیلی زیادی باشه بکنه محدودش بکنیم میکه آنها چند تا اجکت از اون سایت هوما موبکات کنه دانلود کنه چون چه برای سایتها سایتها یعنی سایت که دارای یه های زیاد و لینک تو لینک تو لینک تو لینک حالا آنها بودنوی بعضیم نمیبینی در جایی که اون یوزر رو دانلود کنی یا میبینی با کل کردن رو دانلود کنی تو سایت هامو اساسا ها ها لینک داره اگر آرش ماسوسا رو دانلود میکنه ماسوسا معمولا لینک داره کارش همون شدی گذره بعد انجامید تو پاپ ات بیا برادر داشته. خودنی بالایش اول بگم که اینو بهتر بزنید ماکسیمم دیپ اوف لینک پر پیج دیپی یعنی چی؟ عمق بچ بره اینو دانلود بکنه این بچ عمقی همون لینک‌های مختلفه یعنی یه پیج پیج اولو که دانلود میکنه پیج اول خودش مثلا 4 تا پیج اون میره پس یه لول میاد پایین 4 تا لینک تو میره دانلود به جاهای دیگه خب هی تو در تو تا اگه داری یه پیجی رو دانلود میکی یه سایتی رو در حقیقت دانلود میکنی تا چند تا لینک رو در رو برو شو کن دانلود کن رو کن چند تا بوده هیچی تو آشنا تعریف بود مثلا من این رو بیدار کنیم خود است؟ نه یه کالج میادم یه در تو یعنی در دانلود ها شاید نادرسته چون این یعنی کالج هر چی نادرسته اینی که کامو پیج خوش. بعد، حالا اینو so دو تا اینجوری نامم میت آبجکت، حداکثر آبجکتی که توی این دو تا پیج تو در تو میتونه داده ببره هزار تا. هزار تام خیلی دیگه. خب 60 هزار خوبه آقا قابل برنامه‌ریزی نبا تا کافیه. می‌خوام یه تیک دیگه، بکنیم. بعد گزینه بالایی، دونات بالونی، آوتساید URL domain یو اگه این چک ما رو فعال کنی یعنی ببین لینک هایی که میشه خارج از این دوار الی که من وارد کردم رو دیگه نه اصورهشون اینجا من گفته بودم دبل دبل در اونجا تستات کام رو دادم رو دبل دبل دبل تستات کام یه لینک داشته باشه به دبل یو دبل دبلی مارکوسان.کام مارکوسان.کام یه یوادل خارج از تستات کام شد می اگر لینک از معرض سایت های دیگه خارج از اسم دامینی که تو وارد کردی ها دانلود انجام بشه یا نه اگه میخوای خب که ما رو نذار اگه نمیخوای که دانلود بشه کنیم؟ که ما بذاریم که دیگه اونها رو دانلود من میگم بله حالا که استاد ها لینک های دیگه رو به جای دیگه میشه اونها رو یه بیخیال شیم خب کار رو کنه خود این که خاص این نه اینکه لینک های یه یعنی این ریسیس رو بالایی داره. اگه تیکشو وارد لینک های اون سایت رو به مدرج پیج های دیگه همون تا یا هر کجا بی خیال میشه. وقتی من اینو گذاشتم بالایی هم تک ماکوش گذاشتم یعنی فقط لینک های تو در توی رو دانلود کرده مربوطه کی میشه؟ خودش. درست فاطمه. حالا اگه تک ماک رو وارد چی؟ یعنی آن لینک ها تا دو تو لینکی تو, تو دانلود کن. ولی اون که از اون لینک ها خارج از من بالا نوشتم. آره؟ من نوشت. خب بعد منم اونم اون وقتی بوت کشش کنه میگه ساختار به چه صورت میشه اول ها دو این بالا رو ببین کانسنت رو ببین کش آر کانسنت یعنی چی لینک هایی رو که دوست داره رو هر جا کن کش اون هرج آرمگونی هرج کش گزینه پایینی ای این سورس اند ریکوست هدر اندیکیت تو کش یعنی اگه سورس گف یعنی تگی وجود داشت که کشی انجام بده اونا رو کش کن در انترا کش نکن بعد گفته و این قضیه اون یکی قضیه از کانن ویل بی یا اگر چی بودش بود اونها رو کش می کرد مجاوره رو باشه پایینش ده گفت اگر تور ایندیکیتور کچینگ دات کش بو بن باشه یا كون بی کش خب این اون بالایی تو چیه این بالایی صفات دینامیک رو هم کش بکنی. این پایینیش چی رو کش می‌کنه صفاتیک رو داره و هم هم همه چی کش میشه کدوم آل کشم همه چی که های کشم وقای داینامی رو هم کشم کنه اون پایین یه چی؟ اگر خود سایت تگی داده باشه که تگی این رو زده باشه که آها من او بکن اگه میخواد به هر حال کشم بشه و به اون سایت کاری نداری، بگو خودم بازید در دمکی گودشت هم دیگه آل هانم کشم خب خب ها در یک هشتا چقدر تو کشم خودش نگرش داره گذر expire content according to the cache rule اگه اینو بزنم یعنی آقا قانون کَش رولی که رفت تاریخ‌گذاری کردیم کَش رول تاریخ‌کردیم رو و رفت کَش رول اونجوری کردیم بر اساس اون کَش رولی که اونجا تاریخ‌گذاری کردی عملت کَشینگ رو انجام بده یعنی برو ببین دوباره از آخرین باری که تا تعریض کرده تا حالا چقدر درصد رو بگیر و همون داستان بره جلو اگه نمی‌خواید بر اساس اون قوانین بره جلو بره جلو گزینه‌های بر بر دیگه هست مثلا تیتی ای دیپ اگر کللا سایت خودش نگفته من رو چقدر کشش بکن تو چقدر کشش بکن شخص دقیقه میتونم بگم تا چه دقیقه یعنی اگه خود اون سایت نگفته این سایت رو چقدر کش بکنن چقدر کشش بکنه ؟ یه ا خود بالاره بدل که این یور موط نمیشه دیگه یعنی هر تو تو کمور رو لا دارید. برای مده پایینل بزنم اوات آ تیiel، اما بی که که اصلا اون وقته چقدر رو تو رو کشف بکنم تو کلا چقدر کش کن 6440 دقیقه کشفش خب من میگم که آره اصلا تو بی همه چیز شد بقید 6440 دقیقه سایت رو کشف کنه هر دام هم کشف یعنی TTL. اگه تست نشده برای سایت TCL time سایت دو. اگر مشخص نشده time به سایت تایم کلیبی دارد سایت معمولا همون مدت زمانیه که به بردرها و کشت برودرها میتونن نخفت میتونن کشش کنن یعنی وقتی من وقتی جام به www تست دارم سایت تست شده برای من شست دیگره من چرا را کشش کنیش میکنم؟ شستره حالا اگه سایت سیت کرده باستش باستش تو چقدر کشش کن؟ تو چقدر کشش کن؟ حالا این گذنه رو بزنم همینه یعنی اصلا توجه نکن کی تی اله سایت چیه؟ سایت ها اصلا چقدر کشش کنی؟ یا نه تو کلا چقدر کشش کن؟ yes. یا رفت کشش کن؟ باید؟ با این وقتی این کش، دم کشی خب ای دیگه این بالایی گفته دینامیکام بود، کش کنی نه بود، دیگه، میشه فقط استاتیک. خب. حالا میایم بی ام دی نسل ست کنم یه سانیه باره, باره الان به جایی خاصی پرته هشتاد وقت شدیم؟ نه میانم این وقت میزنم الان دارم شروع کنم یا حالا ببین این تا چه رو همه؟ فکر نکرده باید برده فوت پورت هشتاری برد شد دیگه ایجا را این ها آمدن این چند دو دوتا سشنه من دوزم دو چند ها سشن بزم؟ چهار تا. خب ببینیم بازم داریم آی پی حالا بعد ببینیم اولا تست دار آی پیش چیه؟ در, در, در, در, در. در, در, در, در. پنجی داریم خب هنوز نرفته باشه هنوز شروع به کار نکرده باشه خب ببینیم اون وارنگ میکنم؟ یه وارنگ آخرش یه امون داز چشپکس هایی هستش گریم رفت بخونیم اون وارنگ رو ببینیم اون وارنگ چی باید یه بار دیگه میام توی قسمت به کشم content delete میکنم اگرچه که job دارم اونجه دیگه start job هم نه؟ و باید start پیلیتش نکمیم چه؟ هستار هستار چی میگه؟ هستر رو گفته که اکتیف نیست آنچه نیست خواب گیش می با این اصلاف ایلاد شما چی هم شهری کو بعد ویزاره تمام جود ۸۹۱۰۰۰۰ در هم شهری آن <مشه> لان دات چی بود آیا. <مشه> آیا بود آیا بود؟ آیا دا بود؟ دات آیا یکم خوبه, خوبه کش بکنه؟ اله فمسون مابا 646 درده جای کشت بشه چیزی هم نهپوردی این حبته استاف شده آدم برده هست من, من هم مترسطه کنه استاف رو کردم این استاف شده بود من استاف کردم حالا چی شد استفرو باید پرده هرنشد رو می در یو هشتی باید بشه خب این اید؟ خب. ها چی هم خوب خب که من داره. اگر اینو حالا یاد بگیر در این به این قدیه هم رفتی داره یه هم اگر خود اینترنت اکلورال TNG رو باز کنم خود پای TNG داری بره رفتن نشستنم میشونه چورو پایش باز کنم بزنم درولی درولی درولی درولی یاهوداتان اکس دات کام بمیدونم هرچی سایت دیگه ای آیا از کش خود TNG استفاده میشه برای اینکه سفایت رو پایز سردش بیاره یا نه مگر نمیاد اینکه چی یعنی برام اینترنت, اینترنت اکسپلورر تست بکنم که از سرور آیا اگه من برام تو اینترنت اکسپلورر تست بکنم که از آی پی خودش استفاده بکنه آیا میتونه از کش خودش استفاده بکنه هنوز نه هنوز فنی بات شو تو هنوز نه برای اینکه تی خودش بتونه از کش خودش استفاده بکنه تو کنسول باید یه کانفی کوچیکی انجام بده که یاد داره به رفتی داشت. این قضیه ی رفی داشتش برای این قانون تو دوتو نتورکینگ لوکال هاست کی بودش خودش, خودش. راضی می کنم روش پراپرتی اش رو میگیرم پنج دیگه واسه اینجا دارم؟ ندارم در پروتکل این چک ما باعث خرده باشه برای خودش اگه من اینکه ما برو ور داره یعنی کارکی فقط چه تو داره لوکال هاست یعنی خودش اگه چک ما ور داره تو اینترنت اکسپلورر خود تی این جی رو به پورت کلاینت خودش هم بکنی بعد از کچو استفاده نمیشه. مثلا اینکه هر کچو اینا تو بده بعد حتما خود اون گزینه خورده باشه. این خورده باشه بعده فاصله بری تو اینترنت اکسپلورر IP آی چی کی رو بدی. خب آی پی کارتکی اکسترنال رو کار بدی یا آی جی باشه که اینترنالش رو این اینترنال اینترنال اینترنال ای خورده باشه فرما. چند تا؟ بعد واقعا بعد دوباره بیام روی گزمت ویبکسه پا یه نکته کوچیک و مهم روی گزمت بریم میساید من هم تیگه رو برنگرده چنده تیگه رو رو دیگه کانتنت خیلیس رو هره استافت جابه دیگه انجام بشه این باید چی یعنی الان استاف هست اینو بزنم چی میشه استاف میشه تموش ها یعنی استاف هست اونو بزنی استاف میشه قسمی استاف نبود تارت نوشی شده ام. درسته؟ تارت نوشی شده یه میکنه چی داری ریپورت همی شده این فاصله شما هم که این کانتنت کشینگتون رو تنظیم مبانید هرکی ترجمه این یه سایتی رو بذاره بعد تنظیمات را ترجمه ما شده پیدا هم یه سایت ایرانی یه سایت سباک اگه میشنسی اون سایت رو بذاره امید تو بذارم این که می پس بوده بود. اگر اون وارمینگ رو بود جلو رود یه دقیه وارمینگر رو بخون چی نمیشته؟ بعدا من داره ببینم چیه از هر دردارم که یه دردارم ببینیم اون برق مکسیموم بزن دوست آره همون میگه که باید لوکال هاست در مکروکتی گوش از بسنی اتا می کنیم برای خواهیم برای اینکه بتونه content رو انجام بده. ویا ادیتون اسپورتینو بزنی رو وب کنسول رو چک ماچرو بزنی ها از این به وقتی میخواد دانلود بکنه دیگه از چی خودش رد رد شه؟ از از اون رو به پروفی قید که اون علاوه عمل کشی رو هم چیزی خورده؟ می‌خوره، اینکه نو نو کردم ولی اون تیک خورده. خب تیکال خورده، نه نه. خب حجی بذین پیغام خورده بزنه. خودش استفاده خودش استفاده چون بعد از اون محلی که عملیات کشینگ انجام میشه رد میشه. حالا اون تکماکی می‌ذاره این مثیر رو این جوشافت می‌خواد رچ بگیره. بارنما به من کلاینت درخواست می‌فرستن به تی ان جی نمی‌دونم چی میشه موسیقی ببین این همون درده دیوه هفتن دارم دیوه کن ببین ببین موسیقی نرادو از تردار چونکه می کنم بینام همون سایت هایی که بچه هستن نرادو پنجی هم به اگر ریورت داشته باشه، نه روشه یه لحظه میتونی کامپتر منو کنی، بعدا ادامه ای تسته تو بدیلو نمکن یه منو کامپتر یه لحظه باید کامپتر نکن من الان میان دوباره دوسته لفکش کانتم دانلوز، بود؟ تاپنه هم اینورا چی چیزی کنه چون من یه باری دستی کلیپ کردم بوش. با این اطاق میان پای کلاینت هم خواهی کلاینت رو ببینم چیزی میاره الان برا اگه سریو بر یه میار دیگه چون همچهاری آنلا رو بزنیم که یه که همچهاری آنلا از خواهد اینجا باشید لطفا چرا میارم بعد میام اینجا خب انجام شده هست اوکیه یه گوگل رو بدنیم ببینیم اصلا انترنت داریم اول کار حالا بازنم www.hemشهریonline.ir این یه ذر رفت هایین یه ذر رفت یعنی اوکیه ولی خب الان با این به دیگه مربوط میشه یعنی دو امیر رو نظر چیزی شما هم شما هستین یا نه؟ از دیگه چه این؟ چه این؟ نه باشی نیسته بکنم نه اون تست که جلسه قسم میکردی؟ نه اون یه تست دیگه بوده اون میتونیم تست بکنیم بایچه اگه هم کنیم از اون تو بینیم میشه؟ تو کالج کوشن این کاری رو برات نمی‌کنه بعد کاری حالا и после этого он оставил да, да, да. И он не знает, наверное, вот. Ну, вот, вот, вот. Что-то там А он же Noia, kami ingin agar dia baik-baik saja. Saya tidak tahu bagaimana dia akan melakukannya. Anda tidak akan menanggungnya. Kita harus berjuang <laughs> <laughs> untuk diri kita sendiri. Saya super. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada.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 سلام لطف دارید. رو که تو این همان رفته آفیتی یک شنبه سه شنبه شنبه میگم؟ نه امسان که قرار این رو روشن کنم خودم بود گرفت آقا رفتم هرچی بمیترین گرنجم دار بده سه شمبه, جلسه سه شمبه جلسه بعد اوکی میه این سر کلاس هفته یهش یک شنبه میه این سر کلاس سه که ترتیله درسته سه, سه شنبه ترتیله ها دیگه یک یک مارم بدونه ها که <تصال> هیچ سه عملان هفته یکی بعدش باید کلاس داشته باشه دیگه یک شنبه و شنبه باشه. اون هفته شمبه. پس کل اون هفته پس چیشو یعنی دوازدهم تا شونزده هم نه با باش بعد و از الان بگم که اگه به داری کاری میخوایی بکنی از الان بیدونی چون این هفته برچه میگم که فقط یه جرس داری هفتهی برچه ها اینا رو خب خب من جیجو من رو دوازدهم دوشنبه، دوازدهم شنبه در واقع میزنم. 13 دی یک شنبه شما شنبه من یاد بزنم در هم بزن همشهری online.ir این به نظر میاد که افکش نمیخونه یه ico.ir بزن ico.ir ico ico با ها این فردا رو بایده حالا یه میام میام رو به تشین. شما یکترین به نتیجی بسیدین یعنی باقا هم رو کش برو براتون احساس کردین خب حالا من میام یه بار می میام رو نکاشیم دی نفلایم بشه نیو رو بزنم یا جای دیگر ها نیست. نه کارگی سیتاتون است ما. s d p dono این دو تا اپلیکیشن کَش 20 تا اوکی آخه من صد نه نه مثلا خوبه بود دو بیشتر هزار کنم آره 300 تا بعد خوبه اضافه وارد این که بیستم اونم اوکیه نه همین بکنه نه ما باشه یه کامل انجام میشه افلاق ستافه یعنی ستارتون موبردی تو دیگه خارجیه بالا خب حالا بیام اینجا آقا هیتوقت هم ستارتون میشه همشه هم ستافون میشه نه همیجه ندیدی او هنو دانروس کرده یا با کنسون تو ببند دوره با یا یا پیج رو ببند دوره با کنسون مثل ست بشه ا چی مو بینه سایتی شما به من گفتی نداره. شنده آبی نداره آفی ندار HDMI कंपी डिस्प्ले जो ने شفت نوهه فایند بکنه اینو ببهمم اینو تا زده؟ چهار سار خوش های نیم پس دره کار بکنه بیام اینجا بیام این وقت بر. توی قسمت کانتن رو این کلیک بکنم اینو استافه اینو ببندم سهتا روی پشش بشی کنم اله یه بار دیگه ویبکش این رو کلک کنم همه اصافه اما یه چیز شما که چی بود که کجا ببینم چی کار داره میکنه میگم ببینی تو معمولا رو که میکنی که دیگه اون دیگه اون هم انجام میده یه داره Okay. نه. خوب، امین حالا ببندم حالا شما تلر آبژیکتر هزارتا قدشتیم تو میشهد حالا بگه هزارتا قدشتیم حالا اصلا شما دیگه اصلا منم هست شما <تصفح> <تصفح> <شوان> بود <تصفح> آه یه مقدار وایسیم به، تایمه یه مقدار بده بس فکر کردنه تو این فاصله من یه چید یه رفت نهام رو یه تولز رایگانی ماکروسافت داره با استفاده از اون تولزه میتونی محتویات یو آر ال کش رو ببینی برای مرحله کشم کجا؟ رود درایو دی گذاشتیم؟ نه، یو آر ال محتویات این فایل، میخوام توی رو می ببینم. می خوام ببینم تو اینجای کیش شده. نه. یه نه، یا جو؟ بس که گفته بودم کشه TNG چجوری کار می‌کنه. اپژکت بیت کار می‌کنه. های سایت رو بهم داره اپژکت تو سایت های دیگه و ساده قرار داره یا؟ نه بهتر یه پرفرمنس بهتری میتونه بذاره میتونه یاد <تصفيق> آره بری بریمونم افیقشن چیه بریمیتن مثلا تی ام یا آیزا چشت بیوور بیوور رو بعد ویکیپدیا که چی آ سرور ببینید تو تولزای آیل این سایت به خاطر بهتر دور در در داد از بهترین سایت‌ها در زمینه شوه آیل می‌تونی ش... راحت بشی okay. هر هفته واسه این ایمیل رو جوزده می‌دند ها ببینید که هاو کین یو کانٹ کنترل کاش اینا به بعد نمیاد بعدیم اینجا همین 12 اینه. از کجا دانلودش کنم حالا؟ که دانلود رفتم پایین داده؟ این دانلودش نه. خب بکنم تاسه من خودمان داشته باشم این رو باید بگرم لینک لینک همینه دیگه آر آر آر من اینجا رو این چی شده باید شب از ویژیوز نکردم دو باییمون که میبندمش خب دانلوز دانلودش آره رو خب این ببینیم آره خودشم کشت یا این جو بودشت نبود خب این میبینیم کمه این همه یه جیریت یه کیت یعنی اینکه شما بتونین روی یک دروپی توی ویندوز پروگرامینگ بکنید بعدا وقتی مو سرویس چجوری کار می‌کنه چه فانکشنایی توش نوشته شده آخه فانکشن رو صدا بزنی اسمش چیه این اس یه نمونه برای اینکه تو ببینی و یاد بگیری چجوری سرویس بارونم. چه طنز دو اطلاعاتو به بچوام کنه؟ معرفی. خب، بذار ببینم بالاخره من همین یه سر رو دانلود بکنم، هر رو دانلود بکنم ببینم مشکل من حل می‌کنه یا نه. اینم خیلی خوبه. MSDT, TTest. فایلارو دانلود دانلود چرا دانلود رو دانلود بکن دیگه. نه؟ واطور دانلود میاره؟ ها یه چیز اجرامشی برمی؟ اگر اون باید میشه دانلوک کنیم باید باید رو نه اون یه چیزه خیلی چی باید کنیم تا نه نمیده بگیرم این ها یه فیدیه مشکل نداره. هر میشه از نه بعضی سایت خودش بیه این رو اصلا رو یا توش اول برخواید منی دانلود با این دولت رو دانلود بکنی به خاطر اینکه به رجوع اونجوری بکنی بکنی و خیلی وقتا وقتی با IDM یا رو دانلوژ من دیدم فایل تانلوژ بشه ولی کرافته خوش رو دانلود بکنی ردی شد نه نهدی ندارم نه، نه، خب این فایله فایل لوکیشن اینجا کنید اینجا خودم هم نشون میده؟ نکتش اینجا که وعدی فایلا رو کوپی کنی همون جایی که پایلی کشید کنید حالا بزن جلو به جلوبه هون میگم با جا نگه تنگیرش کجا رو حالا؟ کنی کجا رو دو اینجا چیز دیگه ایش نزدی؟ بیاستار تو دارم چیزی وجود داره این دانوت مانیجاری که بلا خودشه یکی میشه هم بازدم دانوت مانیجاری؟ دقیقا اگر اینجا ها نباشه احسانا کجا تو همون جایی که خودت که اینجا رو نرز کردی؟ خبه درایو درای پروگرام فایل مارتزا پروفرانچرات منجمنت نور چیز دیگه؟, دیگه. هشتی های را را دارم چیزی؟ میکرد کردیم تی ام جی نمی خب ها اینجا اینه حالا یه هنگه هم کنم ببین میگه فایل نیستم فروان کندات میکنم این فایله نیست mfpcdll missing خب این فایل رو اوپی میکنم توی پولدره اینجا اینجا اینجا درد بیر میکنه الان که بهده یه چیز دیگر رو بگیر بهده میکنه در بیرده چون چرا؟ با فائله کنره جمعید تو بودن نه جایی حالا همین. این هم خودشیه نمیشته کپیم نرگیره حالا بده این پایده را کپی کنیم بقید داریم مبینیم ازا پایده چی هستش ام ازای کپی ام کنترل بی. آید بیا. آید بیا. اونی بر اساس کاراکتری. حالا راضی کنیم رو نونالیزینش کنیم؟ نه، یه این هم یو آر این کوی حالا میگه چی؟ همون میگه. خب بی کنم بیان توی اینجا شیو رو اینجا اینجا اگرچه این بعدا هرم هم همه اوشتوی هم تویم هرمش هم کنیم چی ولی حالا باید اینو با وی پست دارم برام می‌نامیم هیچ، هیچ وجودی هست. یواره O R O R حالا یه او یه کنم آیو بسه آیو او میزنی شما الان هارت ده بوده در این زورت توی این ببینیم میشنیم بلاختی تو رو بخونیم اینجا رو ببینیم کنزل برای یه فایله یه خورده یه ببین چه از داکشومنتی چه از نایشم می کارم چی گفته؟ گفته دانلوڈش بخونی نمویم اینو این سال می اوکی بعدی یکی دیگه هم گفته میتونید ببینید روی تایم میتونید میشه ببینید خب نه بود که کنید کنید میگه локیت in کی؟ میگه رام مموری رو تو آل من بیام تو کنسوز خود 3MG من با فاروار ترویس رو تو مونیتوریم بیام اینجا اینه دیگه یک بار کنم نمیشون هیچ بعید که یک سری علمانه رو به این سری اضافه کرده باشه که وقتی استافه سارتش می‌کنی، اونا دوباره خونده میشن مثلا دارد. اجواه کردیش؟ قبل هم میشنم که شید الان چی شدش؟ کدوم را حالا کنیم؟ سوال جا این که بود کنیم که نشد بعد بیاییم بریم توی TMGR را اجرا کنیم نشد رایه به نه شد دربگیری بودا میکرد. خوالا من یه رفتایی بهم. پاپرسیجو بگیرم خاکی بکنم با ویندو مثلا دور درسته مثلا نه تو سرویسی داره؟ SNS'te bir gider Na, بلیوی در حالا این اصلا وجود داره که این وقت نتونست تی ایم جی رو روشون بدهر چون این طورت مالکیه؟ مالا نشون به که لوگو آیزا وقتی نسلی لوگو لوگوش شکلی بود آیزا وقتی نسلی کردی لوگوش این شکلی بود در این گیردار بازه دا ولی نوشته بود بیا. پادر من پادر می اینجا شعره نمی کنم خودت خود کردی و بعد <متحق> آی پی کانکت. می‌خوایم بریم بالاخره می‌ریم توی کاتگوریه. حالا یا نه کانتنت دانلوددار آ ادمینستریکور بیه بزرگ بیه کوچیک یک دو سه <laughs> uh, use the character to view your own cache and how to go to the cache how to view your own cache how to view your own cache how to view your Ja no, no. Dobra, la, la. Dobře, tak se neměň. Účitelové, že, že, domů jdeme. Jak tam, jak se? Dobře, na to, co je, na Španělsko. Dobra, máme 3, máme dva taky, chůve. Dobře, dva. Dobře, že máme, taky tam, taky tam. Tak, máme 3. Třeba, posadíme ho, taky je, ale. A, ale. Na šest. دو تا دو کنی؟ تو اینمان نهیا رویدایل کنند، درسته؟ یک تور رویدایل به دنبال در داده میگیم، مثلاً تو فرستیم، وجود اون یه رویدایل کشیه، نشون این şimdi میگه؟ چه میگه؟ میگه این کان خیلی بده؟ گفته یه کتیم گیوارن فایلر داره تو خودت خودش هم این فایده رو اینجا کوپی کردิมیش. من کلا الان اینجای با ایناسا پایین یه بار رینو با همون ریستانت میکنم بگم شو با ریستانت اتفاق رو گرفتن پاکه همون تموم بود و نبود تو کشین یادی بگذاریم چیجوری کش بکنیم سایت های مختلف رو بو... یا چیجوری سپس بکنیم که خود تیم بره دانلود بکنه کشها رو بعد رو بیاره aldi et آخه <سؤال> اینجا <سؤال> <سؤال> <سؤال> شب تو هم هست. فقط باید تک‌تک رو. حالا شنبه، okay شاء الله اوكي احنا ما كلاس نادين يوم الاربعاء ما كلاس نادين جمعه بعده كلاس ثاني هاي لازم با روی افتارسه نشد نه این این کام پچی با چیز با 228 هشت آر سلو شاید تاقو با بی نوری هشت می کنم سا هم آی محمدی پور و آقای تیمار که لینک دارن. سیارم جان، شما ولی احتمالش هستی سیار ما کار کرده باشه. راستون که من می بودم. بود اینجا کلاس داره احتمالا